سی تجسم حضور علهیتتان وابسته کلمات نشو میتوانی به جای حضور مسیحا را به کار ببری مسیحا ذات الهی توست خود تو تفاوت فقط در این است که مسیحا به ذات الهی تو صرف نظر از اینکه که با آن آگاه باشی یا نه اشاره دارد اما حضور به معنای ذات الهی توست که نسبت به آن آگاهی پیدا کردی بسیاری از تفسیر و تعبیرهای غلط درباره مسیحا از بین خواهد رفت اگر در یابی که در مسیحا گذشته و آیندهی وجود ندارد گفتن این که مسیحا بود یا خواهد بود تناقض است. ایساح بود او مردی بود که دو هزار سال پیش از این میزیست و حضور الهی را درک کرده بود. حقیقت ذات خیش را به همین دلیل می گفت. پیش از که ابراهیم باشد من هستم او نگفت من پیش از که ابراهیم باشد بودم در این صورت گفته او بدان معنا بود که او هنوز در بعد زمان و صورت هاست تعبیر من هستم در جمله‌ای که مضمون گذشته دارد حاکی از انقطاع او از زمان است ایسا میخواست معنای حضور را مستقیما منتقل کند و نه از طریق فکر او به فراسوی آگاهی اسیر زمان رفته بود به قلمرو بی زمانی بعد جاودانگی به جهان آمده بود جاودانگی به معنای زمان بدون انتها نیست بلکه به معنای بی زمانی است بدین سان عیسی مسیحا شد یعنی تجسم آگاهی ناب در کتاب مقدس خدا نمیگوید من بودم و خواهم بود. در این صورت خدا به گذشته و آینده واقعیت میبخشید. او میگوید من هستم و در این من هستم فقط لحظه حال هست و حضور. تولد دوباره مسیحا استحاله آگاهی بشر و انتقال او از زمان به بیزمانی و حضور است. انتقال او از فکر به آگاهی ناب اگر مسیحا فردا و در صورتی بیرونی تجسم میافت به تو چه میگفت؟ جز اینکه انل حق من مظهر خداوندم من حیات جاودانم من در تو نیز هستم من در این جایم من در لحظه اکنونم آنهایی که مسیحای درونشان را به فعلیت میرسانند آدمهایی هستند ساده و بی پیرایه. آنها به راحتی نادیده گرفته می شوند چشمان نفس نمی تواند آنها را ببیند اگر به سوی استادی بسیر و روشن شدی این بدان معناست که در تو به اندازه کافی مایهی از حضور بوده است که توانستی حضور او را تشخیص بدهی در زمان عیسی، حلاج بودا و دیگر راه بران بزرگ معنوی جهان بودند بسیاری که وجود آنها را نادیده گرفتند. باز خواهند بود کسانی که فرزانگان را فراموش کنند و به استادان دروغین پناه ببرند. نفس همواره جذب نفسانیت های دیگر می شود. ظلمت نمی تواند حقانیت نور را اقرار کند. تنها نور است که نور را تعیید می کند. بنابراین گمان نکن که نور در بیرون از توست و یا فقط در صورتی خاص به تو میرسد. فقط استاد تو نیست که مظهر نور الهی است. پس تو کیستی؟ اعتقاد به هر نوع استثنا حاکی از یکی انگاری خود با صورت هاست یکی انگاری خود با صورت ها یعنی نفس از حضور استاد بهرمند شو تا بتوانی حضور خیش را تحقق ببخشی دست خدا با جماعت است جمع کسانی که از حضور ذات الهی خیش بهرمندند میدان انرژی ویجهی را پیرامون خیش به وجود می آورد. جمع هشیاران نه تنها به فرد کمک می کند تا حضور خیش را پررنگتر کند بلکه کمکی است برای آگاهی جمعی تا خود را از اسارت ذهن برهاند. جمع هوشیاران حضور را برای افراد قابل وصولتر می‌کند با وجود این باید در جمع حداقل یک نفر خاصیت آیینگی پیدا کرده باشد وگرنه های جمع بی‌ثمر می‌ماند و جمع به دامن نفسانیت می‌افتد کار جمعی بسیار خوب است اما کافی نیست از استاد خود معنای حضور و شیوه های تمرین آن را بیاموز اما وابسته استاد خود نشو. کالبد درونی هستی ژرفترین خود توست شما پیش از این درباره ریشه داشتن جرف در بدن و یا ساکن بودن در آن سخن گفتید. ممکن است توضیح دهید منظورتان چیست؟ بدن می تواند آستانی ورود تو به ساحت هستی شود. بگذار کمی امیقتر درباره این موضوع صحبت کنیم. اما من هنوز منظور شما را از هستی نفهمیدم. اگر یک ماهی هم ذهنی مانند ذهن آدمی داشت میگفت آب منظورتان از آب چیست من آب را نمیفهمم خواهش میکنم سعی نکن معنای هستی را بفهمی تو پیش از هر چیز هستی را تجربه کرده ای اما ذهن همواره میکوشد هستی را بسته بندی کند و بر چسبی به آن بچسباند این شدنی نیست هستی نمیتواند موضوع شناخت تو باشد در هستی شناخت و شناسا و موضوع شناخت یکی می شوند می توان هستی را به عنوان من هستم همیشه حاضر تجربه کرد این تجربه و متعاقب آن شناخت مقام روشن شدگی پایدار است تجربه همین حقیقت است که تو را آزاد می کند آزاد از چه؟ آزاد از پندار باتل، پنداری که به تو میگوید گوید تو چیزی نیستی مگر بدن خود و ذهن خود این وهم خود همان گونه که بودا میگوید مادر همه خطاهاست آزاد از ترس در صورتهای گوناگونش ترسی که معلول همان پندار باتل است ترسی که مایه عذاب توست آزاد از گناه رنجی که تو آگاهانه بر خود و دیگران تحمیل می کنی همه اینها معلول حکومت بیچون و چرا یا آن خود دروغین بر فکر، عمل و گفته های توست به فراسوی کلمات مگاه کن من از کلمه گناه خوشم نمی آید این کلمه حاکی از آن است که من مورد قضاوت قرار گرفتم می فهمم قرن که جه تعبیرهای غلط و یا میل به اعمال زور و کنترل دیگران باعث شده است تا نظرها و تفسیرهایی غلط پیرامون کلمه گناه به وجود بیاید اما حقیقتی نیز در این تفسیرها و نظرها بوده است اگر نمیتوانی به فراسوی چنین تفسیرهایی بنگری و واقعیتی را ببینی که مدلول کلمه گناه است پس بهتر است این کلمه را به کار نبری. در سطح کلمات نمان. کلمه یک ابزار است. کلمه انتظا است. کلمه به چیزی فراسوی خود اشاره می کند. کلمه اصل اصل نیست. تو می توانی تا جایی که دوست داری درباره اصل بخوانی و مطالعه کنی اما هرگز نمی توانی اصل را بشناسی مگر آنکه آن را چشیده باشی. بعد از آن که اصل را چشیدی دیگر کلمه اصل اهمیت چندانی برایت نخواهد داشت یعنی دیگر وابسته این کلمه نخواهی بود به همین شکل می توانی در تمام طول عمر خود درباره خدا فکر کنی و حرف بزنی اما آیا این بدان معناست که تو حقیقتی را که این کلمه به آن اشاره دارد می شناسی؟ اگر حقیقتی را که این کلمه به آن اشاره دارد نشناسی و به این کلمه به چسبی در واقع به بوتی ذهنی چسبیده ای به تعبیر حکیم سنایی غزنبی به هرچ از راه وامانی چه کفران حرف و چه ایمان به هرچ از دوست دور افتی چه زشتان نقش و چه زیبا البته نباید فراموش کرد که عکس این موضوع نیز صادق است یعنی اگر از کلمه اصل بیزار باشی همین بیزاری تو باعث می شود، هرگز طعم اصل را نچشی اگر از کلمه خدا خوشد نیاید که این خود شکلی از وابستگی منفی است ممکن است نه فقط کلمه خدا را بلکه حقیقتی را نیز نفی کنی که این کلمه به آن اشاره دارد بدین سان تو خود را از امکان تجربه خدا محروم ساختی البته همه این حالت ها در یکی انگاری خود با ذهن ریشه دارد بنابراین اگر کلمی برای تو کارایی ندارد کلمی دیگر را جایگزین آن کن اگر از کلمی گناه خوشت نمی آید ناآگاهی یا حماقت را جایگزین آن کن این کار ممکن است تو را به حقیقت نزدیک تر کند حقیقتی که آن سوی این کلمه است من کلمات ناآگاهی و حماقت رو نیز دوست ندارم این کلمات حاکی از آنند که نقصی در من هست بد من باز مورد قضاوت واقع شدم البته که نقصی در تو هست با وجود این تو مورد قضاوت قرار نمیگیری. نمیخواهم نمیخوام تو را سرزنش کنم اما آیا تو نیز به جامعه بشری تعلق نداری که فقط در قرن بیستم صد هزار نفر را به قطر رساند از گناه سخن نمیگویم اما تا موقعی که تو نیز اسیر ذهن نفسانی خیشی میتوان گفت که تو نیز پاری از حماقت جمعی هستی شاید به دقت شاهد وضع فلاکت بار اسارت انسان در زندان ذهن آلوده نفس نبودی چشمان خود را باز کن و ترس یأس آزمندی و خشونتی را ببین که همه جا را فرا گرفته است ببین بیرحمی فجیعی را که انسان بر خود و حیوان و گیاه روا داشته است لازم نیست سرزنش کنی فقط شاهد باش به علاوه فراموش نکن که شاهد ذهن خود نیز باشی ریشه حماقت و ظلم را در ذهن خود پیدا کن کشف خود نامشهود و نامیرهای خود گفتید که یکی انگاری خود با صورت فیزیکی خود بخشی از وهم ماست بنابراین چگونه بدن این صورت فیزیکی می تواند آستانه شناخت هستی باشد؟ کالبدی که تو می توانی آن را ببینی و لمس کنی نمی تواند آستانه هستی باشد این کالبد مشهود و ملموس پوسته ایست بیرونی یا به تعبیری دیگر تصوری است وارونه از آن واقعیت جرفتر تو در حالت طبیعی بستگی و ارتباط با هستی می توانی این واقعیت زنده و حاضر را که کالبد درونی توست در هر لحظه احساس کنی بنابراین ساکن بدن خیش بودن یعنی بدن خیش را از درون احساس کردن آن است که تو زندگی را در درون بدن خیش احساس کنی و بدانی که دارای حقیقتی هستی ورای صورت بیرونی اما این فقط سراغاز یک سفر درونی است سفری که تو را به اعماق به اقلیم سکون و آرامشی جرف میکشاند و به تو نیروی حیاتی و شور و سرمستی میبخشد در ابتدا ممکن است گهگاه فقط بارقه از این تجربه بر تو بتابد اما همین بارقه ها کمک میکند تا بفهمی که تو ذره ای ناچیز در جهانی بیگانه نیستی ذره ای که بین تولد و مرگ معلق است لذت‌های زودگذر و آمیخته به درد و رنج را تجربه می‌کند و سرانجام فانی می‌شود تو ورای سیمای ظاهره خود با حقیقتی بیکرانه قدسی و توصیف ناپذیر ارتباط داری من نمی‌خواهم باورهایی را در ذهن تو بنشانم بلکه می‌خواهم نشان دهم که چگونه می‌توانی خودت آن را کشف کنی تا موقعی که همه توجه تو معطوف به ذهن است از هستی جدا افتادی وقتی از هستی جدا افتادی در بدن خود نیستی ذهن همه آگاهی تو را جذب می کند و آن را به مفاهیمی ذهنی تبدیل می کند آنگاه نمیتوانی فکر را متوقف کنی فکر تحمیلی بیماری جمعی اصر ماست بدین سان مفهومی که از خود در ذهن داری حاصل فعالیت‌های ذهنی توست این هویت دروغین که در هستی ندارد چیزی می‌شود شکننده و همیشه محتاج و تحت سلطه دلهره و هراس در این صورت زندگی خود را گم می‌کنی هوشیاری خود را نسبت به خیشتن خیش که واقعیت نامشهود و فنا پذیر توست از دست می دهی نسبت به هستی مستلزم رهایی آگاهی از اسارت ذهن است این رهایی مهمترین وظیفه تو در سفر معنوی است این رهایی نیروی عظیم از جنس آگاهی را از اصارت ذهن بیرون می آورد نیرویی که پیش از این خرج موضوعات بیهوده ذهن می شد. برای انجام این وظیفه مهم باید توجه خود را از فکرها و ها برگیری و را به بدن خیش معطوف کنی یعنی به جایی که هستی را برای نخستین بار در آنجا تجربه کنی. میدان نادیدنی انرژی که به چیزی حیات میبخشد که تو آن را به عنوان کالبد فیزیکی خیش درک کنی.